بسم الله الرحمن الرحیم سخن داشتیم که بارت بوده از عباد الله این من احب عباده علی عبدن اعانه الله و الانفسه بدگان خدا یکی از بیترین بنده لیشکی خودارو کجا کنده؟ در مساف و مبارزه با نفس نفسی هست شده به بعد تا مبارزه نکنیم فرمان خدای تا عدد میشه چون نفس امانم هم چی عادت که به آزادی در عمل خدا او را آزاد بودش با دوی بازی کنه با خودتا روشت کنه عقل شکوفا میشه اگر این کار را نکنه انقدی میمونه و عقل شکوفا بدن باید استعداد ظهور عقل رو داشته باشیم، و این درست رویزیس که بروشدی لازم و کافی بدن برسه لذا چون عقل شروع فانه شده تکلیفم نیست چون تکلیف نیست آزاده گناه نداره بود نداره بودوه بازی کنه خوب بخوره خوب بخوابه درست کن اول تکلیف نیزرن رو دوشش واجب و حرام رو خب امروز روز مشلف شدم یعنی چی با دماظ بخونم اینجای نمیشه به سابق هم گیره رفت سره داخفاین رفت جلو باید هر کجا اون به خدا اتفاق افتاد وایسیم و محکم ببارزه کنیم اونی که خدا میخواد بهش بدیم اونی که رفت میخواد ازش بگیریم اینجایی درست میشه ولینا در مبینی 60-70 سال شد اما همون عادت قبل از بلوغ داره هر فاین درش بخواد چشمی گوش میشنه و زبانم میگه این معلومش هیچ به خودش نایمده تا سر مخالفت و با فرمان بیسته و مبارزه کن و بگه چون خدا گفته نکن چشم اگر کسی موففن شد خیلی هم کمن زیاد نیستن حتی تو ما هم زیاد نیستن کمن ولی تو عواموناست که خیلی کم ما مبیند درس کنیم کم در مسئله در جهتری بهش چون ما از دستاتی دبویات میگیریم دیگه برد لذا اینجا هواینی بسید برون به میریم برد در کجا در پاس باشه میریم برد لذا فرمان اگر کسی موفق شد سر دراهی گناه و بسید به اطاعت فرمان خدا استاد و مبارز کرد با خواست و هوای نفس اماره این آدم یکی از محبوب ترین بنده های خدا هست چون خدا در قرآن فرمده این نایوه بلمود ترین دیگه این خدا دوست داره این هم ممونه اونهای که کار را انجام نمیدن محبوب خدا نیستن بلکه ممقوز خدا آن من حال هرکی بخواد باشه خدا با لباس در کار نداره به عمل لگاه میکنه هر کی تقوا رو مراعات کنه دوستش داره نکنه بدش میاد هر کی خود باشه, باشه خدا مثل مسوان نیست انو فی رو دقیق درس ارزش و منزلت نمی نبره او <تصفح> میگه اننا اکرما کوم ایندا نو هر که حرف اول و آخر خدا زند هر کی بیشتر خوش برطرف من بده بیشتر دوستش داره گوش ندی هر کی مخاطب باشه ممکنه یه آدم عامی بی سواد خدا که به خدا دوستش دید اما همسال من یه وقت که حالیمون نباشه هرون با حلال بخوریم با خانیم ما خدا قرار میده این خدا حرفو رو زدی همینچو به علم نیست به سایر چیزایی در ارزش آهلا نیست فقط اطاعت فرمان خدا ایدم بعد از زنده بلوغ فورا حاصل نمیشه چون عادت قبلی 15 سال ما آزاد بودیم عادت شده برای مبارزه بخواهد. نکنیم جریان قبل از بلوغ همچنان بعد از بلوغ ادامه خواهد بدی کرد اونتا اون زمان سوشتر بود حالا هم عقل شو شده و هم بدن شده از این مشکل تریب شید و خدا بدش میده از آدم فرح نمی لو ممکنه مردم دوستش داشته و شنون خدا بدش میاد چون مردم نمیدونن چه خبری خدا میدونه. اگر خدا بیبینه کسی برای فرمان خدا سبزی خونده می کنه اون سلامتالله سلام معنی سوال شد که ما از کجا بفهمیم منزلت و موقعیت چه مقداره فرمونه ببین منزلت و مقدار خدا در نزدیک تو چقدره همون قدونم متوابلا گوش برمش میدی غیل منزلتی نه؟, نه غیلی یلت احواظ که دلدار نکسرن پیون نگاه دار سری رشده تا نگه داره تو سهلت یه زنی اگه میخوای مواظب باشی گناه نکنی تا خدا هم براد منزلت به حرمت قایه باشی و بعد دعای مستجام باشی حمایت ها و دفاع در زندگیش براده برم کن هر روز یه چاره چاره همیختر بیرد تو تا هم بیرم برابر این کلمه نهل نفس علیه هوا که همین رو هم اقتباس از مراد کریم کرده که اعانه الله علا نفسی چون نفس نمیزه رو آدم گوشبر خدا بده خدایی میکره میگه رو من بده بده من باشه و نوع مردم هم من میگونه گوشبر رو به نفس میدن هرچی این میخواد همون کاره میکره اما افراد نادری یعنی خدا کمکشون کرده برای خلاف جماعی راد و نفس قدم بر دارن گوش به شده می دارن فرمان خدا هستن خدا رو خیلی دوست داشته با زحمت می شه آزاد مردم نگاه میکنن چه هم می یه خدا گفته نه مردم پاره حرام میکنن این حواس به زحمت این ترکیه هوای حرام که بارد تون خورای ریاضت بزرگ و مهم اسلامیست است این جاهلت نمیفهمن یاد من ریاضت چیزی دیگر همین ریاضتی از اول ملوک تا آخر مور این ریاضت هر چه روز نی از اول تا آخر بیاد ریاضت میکشی تقوی رو مراهد کنی امیر مومانی این نمایه نفسی عروضه ها به تقوی من با تقوی ریاضت بدم امروز فردا هم بس و تا قرار تا آخر باید واجبات انجام بدم معلومات هم ترک کنم ریاضت چهلوز و انجام روز نی تا آخر با دوزی نکنی بده دوزی چهلوز نی برابر این ریاضت بزرگ در اسلام همین مرات تقوی که کشون یه خود تلخ نفس دلش نمیخواد. این ریاضت رو نوعن. قبول میکنن کنند برای آزادند اما اگر ایسا می کنند موقعیت می فهمید چقدر. نفس امال ناراحت میشه شود اول همین جور به تدریج سهد می شود برای انسان تا برسه با اونجور که عادی می شود همونطور که گناه کردن برای ازیاد عادی شده راحت گناه میکنن، ایران راحت تقویر راحت می کنند آزاد دلش هر چیزمون میخواد بهش بده هر چی چشم بخواد بهش بده هر چی بهش بخواد به بش دبش بشی نفایی بزنه بکو اینا رو میخواد دیگه بعد این یهو نمیشه که گریف سخته مشتری. خدا باید کمک کنه به انسان این که در سوریه هم فرمود بگو یا کن بود بعدش هم بگو یا کن است تعیمال اینه من تنها بنده تو هم تو بودم به یه آسو دیدیم همین رواز میکنن اما گوش به هفته بیدن گناه هم میکنن بقید. فرمود کمک بخواه من تنها نمیتون سماره طبی شده تو هم ضعیف ایمانت حالا بخوایی نمیشه برده با تم کمک بخواهی خدا بعد فرموده بعدمو انالله هم من بودترین اینه بیقی بدانیت خدا با آدم های با تقویز با آدم با تقویز کمک شد. راحت از نیکو میکش میکنه. این مسئله فراموش نرو. حتی بی تو نیست تا بیز خودش یکی از مقدماتش فرادری نه استش ار خوب نیست چون نوش دنیاست. این حوزه یه ای حوزه است. آدم ببین از قافلی خوبه. دیگران گناه رو میکنن به برایتی نمیتونه هنو گرفتاری. دیگران تحجید دارن این میخواه همشون دیگران صفات خوبشون اصلا کردنید هم صفات بد دره دیگران سلام کنن توقع دره نمیدم چار کنن حسد دره سایر بیماری ها آدم عدم ببینه در خودش امتیزای هست گستش رو میشه. این گستش این گوشه اینو آدم که میکنه را میوفته بیفکر میوفته که نارو درست کنه اما گسته دنیا نتیجه از اینکه بیشتر بوده دنگول دنیا خودتا قدر میکنه مقدمات رشد دنیا میره فراهم کنه و این هرنوم جرن پشت سر خیلی چیزا بیت تا و اون نک که اول بدنخج و ضرورت اما این وازن ودم ها مطوره. این موتور این حوض نباشتم تکون نمیخوره بسهره راحت میره میاد خوشبالا بازم این قصد می شدم تکون باقید حرکت کنه این قصد باید میول و با بارکیست قصد دنیا نیست که مقدم یک گناهان بزرگ و بزرگتر باشه این باید باشه و تن ببینه آوزا خرابه اگه حرکت نکنه روز بروز خرابتر میشه این حوض فرزین موتور میشه و آدم را میفته کم کم این بیمونو مبارک بله اما اگر نگاه به خودش نکنی کتابش بره بره نزنی نبینی چی صفات بدی داره کجا گیر کرده همجوری ریمونم ماسمانی کنی بری رو تا آخر عمرم نمیفهمه چه خبره کاراش انجام میده صفات بدی هم که در روز بره تنبیت هم میشه اما حالش که باید از این را تنبیت بشه در روز بوده از رای عبودیت میداد فرمان برابرین کمی از افراد از سرومی از مقدمات محبوبیات در نزد خدا قیان همین آدمی که من عباده الالله همین بادی استشاره هست داشته باشه به الله محبوب نمیشه یعنی تفکر رو براده میکنه میره حرفایی دیگه پیشی من من برابرین استشهاره هستم لازمی تصف و کتابی. کتابه ببینیم تو اینجا تا چیز صفحاتی هست صفحه تکبول هست صفحه هزت هست صفحه دنیا پرستی هست نمیتونین عمت خود رو در دیگر رو همه اینا اینجا هست بخونه و ببینیدار ایمان در رقم کمک کشم کنه شماقا و لعقا مونده تو بود اینجا نماشی مولا در محیمت این قصد باعث بشود اگر این گسه وجود نیاد را نمیفتیم بعد از بلوغ هم مثل قبل از بلوغ همون کارو و همون حالاتو تا روز به روز صفاد و بدلی سال محکم و میشه در طول زندگی در مزان امتحانات الهی و وقت و زور پیدا میکنند تا میبینید بعد سال یهو رفت طرف رزاشا بعد شهر سر تا تنبایی هستگل این رای که باز بشه می همینی میرند هزار شهر شراحیط خواهی بود مولم های اتراز اولی میبرد و ها رو نیبرد درشداری بود که از فردا بدد اونجا بنابینو بخدن پور بهشون این که بای شدن و رای برگشت تا ببینند من ما همون ما و انجابت پرا و تک حرکت سریع شروع میشه به اللهی بخوایم کتاب بخونیم کتاب بخونیم روزی این کتاب باید ما ازش استفاده کنیم تا که پیش استفاده میکنیم با یک دنیا کتاب آدم زیر فرشن بشه اینجوری بله. آدم میره اما اونای که کتاب رو برقز دادن اصلاح کردن تلا هم بدن نویرن بریم کنار کتاب ما باید تقوی فرمان ها رو تبریم کنیم دیر شروع کنیم کتاب از عمل بزنیجه رو یعنی خطر پیش آن روز امتحان ما بسیلی نداریم از رو که بدون اصلی جنگی بخواد بره جنگ با چی بسید این فستش علالهاوز باید قصه بگیرم ما رو که چرا ما از قافل انسان های خوب و با فضیلت عقبیم این قصه بنزین موتور میشه در برکت میگویند قصه سر جاش هست و نفس هر روز برود چاختر و چاختر میشه تا دیگه اوندا به جای خداپرستی نفس پرست میشه امیدوار خدای متعال همون را ذی خطر نجات و رحمت کنه انشالله شاء فقط که و خدا میشه با ترک گناه به اطاعت فرما خداوند میشورم ممددری جان خدا رو, و کنه. إن مسئله و خدا رو به هم ورحمت کنیم بتونیم کنار کتاب مسئله تقوا و عبودیت خدا هم تبیه کنیم انشاءالله نسال عرمای یه همه همی که منادیان تقوا در زندگی مندم بودن خاص خاتم هم یا و هزارات علیه و سلام و همه که در این راه خون دادند و اسلام و ایمّام مشهدی آسیس سلامت خرید